اسرار ازل راه نهتو دانی و نمن، بین حرف نه تو خانی و نمن، هست از پس پرده گویی من و تو، چون پرده برافتد نتو مانی و نمن. این چرخ فلک بهر که من و تو، بستی دارد به جان پاک من و تو، بر سبزه نشین بطا که بستیر نماند، تا سبزه بروندمد ز خاک من و تو. از تنچو رفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، بانگه برای خشت گور دیگران، در کالبودی کشند خاک من و تو. آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو، دیدم که بر کنگرش فاخته ای، آباز همی داد که کو کو